ولم السيف ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد وثناء وصفات بخداوند يكتو بهمته درود في روان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم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 راژیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه میریهد. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدوارم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد. بله همکاری عزیز، سخن بده روزانه می کشانیم، می راییم به طرف داشته های برنامه. در برنامه امروزی، سلسله اندرس ها، موضوع اختصاصی به مناسبت شهدائی کرام در بخش نظام اسلام موضوعی را اختیار نموده ایم زیر عنوانی چرا فرد مسئول اصلاحی جامعه است و همین طور در بخش تحولات هفته از گزارشات داغی هفته شما را با خبر می سازیم. فراموش نکنید تزفي عطفيه مؤتنقا بين هذا الذي كان يرجوه الله سلسلي را زر در ترازو زور در بازوست هر که دشمن کوچک را حقیر می شمارد مانند کسی است که آتش اندک را محمل می گذارد با دشمن صلح کردن آزردن دوستان است با بزرگان درشتی کردن حلاک شدن است دنیا زود می شایسته علاقمندی نیست خوشی ها با نخوشی ها همراه است مسکین خوشرفتار بهتر از پادشاه بدعاقیبت است ارزش سلامتی را بیمار و دردمند می داند. عالم و زاهد باید علم و عمل داشته باشند عالمی به عمل درختی ببرست و زاهدی به علم خانه بیدر کسی که قدرت ندارد نباید جنگ طلب باشد همکاری عزیز چطور بود اندرزه ها؟ بر بسیار جالب تمام شد آرزو داریم موردی پسند شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعب ذل لهذا خلف دنيا هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والجميع موضوع اختصاصي هفته ببخش اختصاصي هفته خوش عمدت در این هفته موضوع ما روی شهادتی برادران مجاهد ما که دیروز در نتیجه حملات طیاره های جاسوسی به شهادت رسیدن. اختصاص یافته است. يا خاطب الحور الحساب وطالبا لوصالهن لبنته مسرك هذا ساعة روز پنج شنبه تاریخ 3 رجب مطابق 24 می در نتیجه حملات راکتیه طایاره های بدون سرنشین آمریکایی چهارتن تن از برادران ما هر یک معاز و رواحه از ولایت تخار جعفر از ولایت کندوز و شریف الله از ولایت فاریاب به شهادت رسیدند دو تن ایشان هنگام اصابت راکت و دو تن دیگرشان به حالت زخمی به رحمت ابدی حق پیوستند الله تعالی قربانی های این فداکاران اسلام را به درگاه خود قبول فرماید و ما را نیز در جنات الفردایوس با ایشان یک جا سازد دو دین جرت سبحانهم سکه علی الفيضان این تحتهم. تجري ما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أَوَمَا سَمِعَتَ مُنَاديَ الْإِيمَانِ يُخْبِرُ عَنْ مُنَادي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ لَا أَهْلَهَا لَكُمُ لَدَا الرَّحْمَانِ و... شون مندگانی نهایت عزیز بیاید در این بخش از پروگرام با سخنان بعض از این شهده گلگون کفن راه آزادی گوش فرادهم هم نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبیل الله بأموالهم اموالهم و انفسهم إن الله وأولئك هم الفائضون الآية برادران مجاهد و مسلمان غير و طلباء معظم و اكرام امروز روز غفلت نست باید احساس مسئولیت نموده در برابر جهان ظلم و بربریت و جهان و ده و يهودیت و مسحیت جهاد مبارزه نمائم ذرا امروز جهان غرب امريكا و انگلیس دعوه فرعونیت و دعوه خدای نمده تمام می مملک اسلامیر به زور ظلم و وحشت تسلط نموده زندگی مؤمن مسلمانان را به تاراج و غما کشانیده و آن مصحف های مایه نور و تجاوز وحشیانه قرار داده است و کتاب مقدس قران کریم را با آتش کشیده است و هزاران پس امایت اسلام، ایمایت قرآن، ایمایت فیانبر صلی عليه علیه وسلم برای هر فرد مسلمان فرزعین است پس ای مسلمانان عزیز از خدا بیترسید مسیر رسول اکرم صلی عليه علیه وسلم و, و صحابه اکرم رضوان الله علیه که عبارت از جهاد نموده برای خود انتخاب نماییم. خداون جل جلاللہو میفرمید ای کسانی که ایمان آوردن و جهاد کردن و هجرت کردن بخاطر تنفیز نظام اسلام وذکر از روی درجه از همه کس کده و امین مومین مهاجر مجاهد کامیا فیروز استن و من الحمدلله به خاطر ادای مسئولیت برای خانم جهاد را انتخاب نمودم تا خونی که در رگ های من جریان دارد در جهاد خود ادامه میدهم چه خوش رسم بنا کردن به خاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را sar biland baad doston din sar nigun baad Mabadinumid, din sar sar ma in kamar. Ker salla himaan ei zouta per ma bedin himaan dostani سر بلند باد دوستان دین، سر نگون باد دشمنان دین بله همین است راه حق که با قربان کردن جان حقیقت ایمان ثابت می گردد مبارزه حق با باطل در هر عصر جریان داشته و تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت در این مبارزه هر دو جانب تلاش می تا غالب گردند ولیکن ما مسلمانان در این جنگ منتظر دو غلبه هستیم یا شریعت اسلامی را حاکم بسازیم و یا با زندن خون خود مقام و منزلت شهادت را بدست می آوریم در اخیر دعا کنیم که الله تعالی عاقبت ما را بخیر کند و به ما نیز نعمت شهادت را نصیب فرماید آمین یا رب العالمین هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الردوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحياة وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان نظام اسلام شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندالله در بخش نظام اسلام خوش آمدید البته در این هفته موضوع مورد بحثی ما زیر عنوانی چرا فرد مسئول اصلاح جامعه است که اینک با تشریح آن می پردازیم دیگر نظام اجتماعی اسلام این است که مسئولیت اصلاح جامعه را به دوش افراد می گذارد یعنی هر فرد جامعه مکلف است که در جهت اصلاح جامعه به اندازه توان و موقف اجتماعی خود بکشد. و در ازاله فساد و منکرات سهم گردیده و به خاطر ایجاد یک جامعه سالم و صالح با دیگران همکاری و تعاون نموید. و تعاونو على البر و التقوه ولا لا تعاونو علی الاسم و العدوان و همکار با هم تعاون کنید در نیکی و تقوی و معاونت همکاری نکنید در گناه و تجاوز و بزرگترین تعاون با دیگران همانا تعاون و همکاری در اصلاح جامعه می باشد از آنجایی که فرد مکلف به اصلاح جامعه می باشد بدهی که خودش باید سبب فاسی شدن جامعه نشود و از هر عملی که سبب اشعاعی منکرات در جامعه می گردد خودداری کند و لا تو فی الارض بعد اصلاحه و دعوه خوفا و و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و الله را از روی بیم و امید بخونید یکی از قواعید مهم فقی این است که آنچه اخذ آن برای فرد حرام است دادنی آن به دیگران نیست حرام می باشد. علت حرمت این است که دادن چیزی حرام به دیگران به معنای اشعاعی فساد در جامعه می باشد و فرد مسلمان اگر از اصلاح کردن دیگران آجیز است اقلا از اشعاعی فساد و فاسد ساختن جامعه اجتناب نماید. بنابراین همچنانی که گرفتن رشوت حرام است دادن رشوت نیست حرام است به همان ای که گرفتن سود حرام است دادن سود نیز حرام می باشد در مورد گذاشتن اصلاح جامعه به دوش الله تبارک و تعالی می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی دوستان و همکاران دیگری اند که به نیکی امر و از بدی منع می کنند معروف اسم جمعی است که تمام امور مطلوب در شریعت را شامل می‌گردد پس تمام مواردی که سبب اصلاح جامعه می‌گردد شامل این حکم می‌گردد چنانچه در وصیتت که بنده صالح پروردگار لقمان رضی الله عنه با پسرش می‌نمود میگفت یا بُنَیَ اقیم الصلاة و امر بالمعروف و عن المنکر واصبر على ما أصابک ان ذلك من عزم الامور ای بسرک من بر پادار نماز را و اعمر کن بنی نیکی و معنی کن از بدی و صبر کن به آن چی که به تو میرسد. یقینا این کار از کارهای مهم و ارزشمند. قرآن کریم با ذکر وقعی از امت‌های قبل مسئولیت فرد در برابر جامعه را مورد تأکید قرار داده و بیان می که چون افراد این جوامه در امر اصلاح سازی جامعه خود کوتاهی کردن مورد عذاب الهی قرار گرفته و به حلاکت و نابودی مواجه شدند مقصد از بیان این وقایع این است که مسلمانان عبرت گرفته و در ادای مسئولیتشان در برابر جامعه کوتاهی نکنند. دوم در مورد مسئولیت اصلاح جامعه بردوش فرد حدیث وارد شده است. عن بن الیمانی رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ملا من لا يهتم امر المسلمین فلیس منه. ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم از حذيفه بسريمان روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودند کسی که به امور مسلمانان اهتمام و توجه کتابش امام و عامه مسلمانان نمی باشد او از جمله ایشان نیست و می دانیم که اصلاح جامعه از بین بردن فساد فکر کردن خاطر اصلاح و بهبود مسلمانان شامل پروسه احتمام به امور مسلمانان می باشد مر را امین کم منکران فلیغیره بیدی فا ایلم یستطیه فبی لسانه فا ایلم یستطیه فبی قلبه و ایمان صحیح مسلم این حدیث شریف با صراحت بیشتر مسئولیت فرد در برابر جامعه را تذکر داده و او را مسئولی از بین بردن منکرات می داند. همچنان نشان می‌دهد که مسلمان باید همیشه در حالت آماده باش کامل و استعداد لازم برای ازاله فساد باشد و این مفهوم از عبارت فعیل نمیستطی فبیقال بیهی بداس دست زیرا تغییر با قلب به معنای احساس کراهیت نسبت من منکر می باشد. امام میفرماید. تغییر منکر با قلب چنین است که منکر را در قلب خود بد بیند این عمل اگرچه به منای ازاره منکر شکل عملی نمی باشد اما در توان و قدرت او همینقدر ممکن می باشد پس تغییر منکر با قلب عبارت از احساس کراهیت نسبت به منکر می باشد و این احساس اگرچه عملا منکرات را نابط نمی سازد اما مقدمهی برای تغییر منکر و آغازی آمادگی برای تغییر عملی آن می باشد زیرا معمولا انسان عمری را که دوست دارد در پی از بین بردن آن نمی باشد بلکه در نابط ساختن چیزی اقدام می کند که از آن کراهیت دارد بنابراین احساسی بدبینی نسبت به منکر نخستین قدم در راه از بین بردن منکرات می باشد لذا می کراهیت قلبی را نوعی تغییر منکر بنامیم. علاوه آن، احساس کراهیت نسبت به منکر قلب انسان را زندنی گرداشته و با نور ایمان معمور می گرداند و حساسیت خیلی قوی در برابر منکرات و مفاسد را در قلب انسان جا بجا می سازد این امری است که مسلمان به هیچ صورت نمیتواند آن را ترک کند زیرا فقدان چنین حساسیتی نشانه مرض قلبی باشد و فرد مسلمان باید در علاج آن عجله نماید قبل از اینکه فرصت را از دست داده و سرمایه ایمانش مورد دستبرد منکرات قرار گیرد شنوندگان محترم این بود معلومات مختصر در مورد مسئولیت فرد در اصلاح جامعه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا تسمعن الله اکبر یا لا تسمعن کنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید در این بخش از تحولات داغ هفته شما را با خبر می سازیم افغانستان 25 پنج جمادستانی مطابق هفته ایمید یا خبرنگار افغان که در هفته گذشته در نتیجه حادیسه ترافیکی در شهر فراک جمهوری چک زخم برداشته بود روزی به جان باخت میگویند که حسیبه از سال 2003 بدین سو منحیزی خبرنگار رادیوی آزادی کار میکرد 26 جمادی الثانی مطابق 18 می مقامات امنیتی ولایت بدخشان از دستگیری یک تن از مجاهدین همراه با سلاحش در منطقه سنگلاقی ولسوالی جرم خبر دادند. زبیح الله مجاهد با تایید این خبر میگوید. این واقعه در حالی صورت گرفت که مجاهدین در یک حمله مسلحانه پنج پلیس را کشتند. و اما مرتدین این ادعا را رد کردند. با تاریخی مذکر، سخنگوی ناتو تایید نموده میگوید که کی... در یک حمله مجاهدین در شرق افغانستان در ولسواری ناری والایت کنر دو اسکر نیروهای اعتلاف بین المیرلی کشته و شش تن دیگر زخم برداشت اند. وی همچنان گفت که در سال جاری تاکنون 154 اسکر بین المیرلی کشته شدن که حد یقل تن آنان اساکری با می باشند. با تاریخ مذکور. در حالی که رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو برای شرکت در جلسه دروزه در شیکاگو در مورد افغانستان به واشنگتن مواصلت می‌کردند، دهاتن در شهر کابل بعد از ادای نماز جمعه اجتماع اعتراضی را برپا کرده و مخالفتشان را با امضای سند استراتیجی که در از مدت افغانستان با ایالات متحده آمریکا نشان دادند 27 جمعه دستانه مطابق 19 امی گزارش های بدست آمده از ولایت بغلان می رسانند که افراد مسلح ناشناس شب شنبه لیسه کوشن آباد ولسولی بنوی اندراب این ولایت را به آتش کشیدند. محمد عاصف مدیر این ولایت در یکی از رسانه های کفری گفت بخش اداره لیسه با اسناد ملحقات حریق شده اما به گفته وی از سرایت آتش سایر قسمت این مکتب جلوگیری شده است. با تاریخ مذکور، آیصاف می که در نتیجه عملیات نیروهای ناتو و مرتدین داخلیشان یکتن از قماندانان طالبان در ولسوالی دند ولایت قندهار بازداشت شده است. در اعلامیه گفته شده که این فرد در شهر لشکرگاه ولایت هلمند برزد مرتدین عملیات می رمود. در سازماندهی کشتن مقامه های حکومتی در کابل مسئول شناخته می شود. با تاریخ مذکور، مقامات امنیتی ولایت ننگرهور میگویند که در نتیجه یک درگیری میان مجاهدین و مرتدین در ولسوری لالپور این ولایت، یک تن از مجاهدین به شهادت رسیده و سی تن دیگر زخمی شدند. زبیح الله مجاهد میگوید که در این رویداد 6 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. به با تاریخ مذکور، مقامات ولایت سریپول میگویند که در اثر جاری شدن سیلابها در مرکز این ولایت جان باختند. فایز الله صادق رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در یکی از رسانه های کفر میگوید که در این رویداد 30 تن دیگر گیر مانده بودند با گفته وی ای این افراد توسط قوای هوایی افغان و نیروهای ناتو خارج کرده شدند وی این افزود که در اثر این سیلاب 50 نفر دیگر لا درک گردیده و تقریبا با تعداد یک هزار منزل رهایشی تخریب شده است و همچنان حداقل 6000 نفر مجبور به ترک منازلشان شده و در مناطق با ارتفاع بلندتر از منزلشان پناه برده ان. 28 جمادی الثانی مطابق بیستمی، می نیروهای ائتلاف میگویند که روز یکشنبه دو اسکر بین المللی در نتیجه عملیات مجاهدین در جنوب افغانستان کشته بیستو 27 جمادی الثانی مطابق 19 می یک برادر مجاهد به نام عبدالحق با استفاده از واسکت فدایی در ولسوالی علی شیر ولایت خوست عملیات استشکاپی کرد که در نتیجه 12 تن از دشمنان دین که متشکل از ناتو و مرتدین داخلی بودند کشته شدند. 26 جمدیسونی مطابق 18 می صدها تن از افغانیانی که در مراکز مختلف نیروهای ناتو مصروف خدمت هستند، خواهان بقای نیروهای ناتو در افغانستان شدند. ایشان میگویند که در صورتی که ناتو افغانستان را ترک نماید، طالبان دوباره به قدرت رسیده ما را به قتل میرسانند. یک تن از این کارمندان میگوید که هر روز من به خدا دعا نمایم که ناتو افغانستان را ترک ننماید، زیرا که مطلب اولم وظیفه و دوم امنیت خود و خانواده در این حال زبیر الله مجاهد میگوید که ما همه ایشان را به قتل خواهیم رسان ناتو میگوید که پیش از خروشان از افغانستان به همکارانشان ویزه اروپا را خواهند داد دو فرد خارجی و سه همکاری داخلیشان از سوی مجاهدین اختطاف کرده شدند. یک شاهد عینی میگوید که هفت نفر در این اختطاف دخیل بودند. سه رجب مطابق 24 می. سازمان بین المللی در مورد وضعیت مردم ملکی در افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور حشدار داده است. این ادعا را در گزارش سالانه خود گفته است در حالی که علیه مردم خشونت مسلحانه دوام دارد، قوای خارجی برای بیرون شدن از این کشور آمادگی می گیرند. باز هم سه رجب مطابق 24 می. قمیدان عمومی قوی امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلان می گوید که ایالات متحده ای امریکا در سالهای های 2013 و 2014 به قوی بیشتر در افغانستان نیاز خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری روی جان الان گفته است تصمیمی کم کردن نیروهای امریکایی از افغانستان قبل از زمستان صورت نخواهد گرفت. قرار است جنرال جان الان در تابستان سال جاری خروج 33 هزار سربازی آمریکایی را که بر اساس پیلان اوباما در ساله های 2009 و 2010 به افغانستان فرستاده شده بودند، تکمیل خواهد کرد. جنرال جان آلان اضافه کرد که بعد از خروج این سربازان وضعیت در افغانستان را به خوبی بررسی نموده و بعد در مورد بیرون کردن 68 هزار اسکری با قمانده از افغانستان پیشنهادات خود را به قصر سفید خواهد کرد. یک بزرگی قومی در ولایت بامیان دیشب سوی افراد ناشناس کشته شد به تعریخ مذکور در نتیجه یک حمله استشهادی در ولایت هلمان نظر به گفته حکومت دو پولیس کشته شدن فرید احمد فرهنگ سخنگوی قماندان امنیهی ولایت هلمان برسانه های کفری گفت این حمله صبح دیروز در ولسوالی موساقلعه این ولایت رخ داد که توسط یک شخص مترسای کلسوار انجام شد اول رجب مطابق 22 ایم هفت سرباز ارده ملی در اوانستان کشته شدند وزارت دفاع افغانستان در یک از رسانه های کفره گفته است که این سربازان در ولایت های پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، زابل، هرات و فرا به قتل رسیده و چهارده سرباز دیگر در این والیت ها زخم برداشته اند به تعریخ مذکور وزارت ترانسپورت 190 افغانستان میگوید در میدان هوایی بین المللی کابل برای طیاره های بزرگ محل توقف ساخته می شود داود علی نجفی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفته است این میدان به ارزش 27 میلیون دلار کمک ژاپن در مدت یک سال ساخته می شود ژاپن یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده در بخش های مختلف به افغانستان به حساب می روید اول رجب مطابق بست دو ایمه. رئیس جمهوری امریکا می گوید که پیمان ناتو مسئولیت های امنیتی افغانستان را تا عواسط سار آینده به مرتدین این کشور می سپارد. او و گفت که ناتو پس از خارش ساختن نیروهای خود تا اواخر سار 2014 از افغانستان یک معمولیت آموزشی در این کشور خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در پایان اجلاسی سران ناتو در شیکاگو گفت کشورهای ناتو در مورد پلان خاتمه جنگ در افغانستان با هم متحد استند و اعتراف کرد که هنوز هم چارش جدی در افغانستان وجود دارد و مجاهدین یک دشمن نیرومان و قویند ترکیه یکی رجب مطابقه 22 صدوی می رئیس جمهوری ترکیه گفته است که آمریکا مایل به فروش تیاره های جنگی به ترکیه است اما نخص باید کانگریس آن کشور را متقاعد بسازد عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد تا کانگریس ایالات متحده و صفت یکی از متحدین مهم به ترکیه اعتماد کند رئیس جمهوری ترکیه در مورد شمار تیاره های درخواست شده جزئیات ایرائه نکرده است ترکمنستان رئیس جمعه ترکمنستان بر روز جمعه دستور ریحای هزار زندانی را در آن کشور صادر کرد. رسانه های کفره ترکمنستان گزارش دادند که این زندانیان در یک روز ملی آن کشور از حبز ریحات شدند. بر اساس گزارش این دومین بار در جیران امسال بود که در نتیجه آن زندانیان در ترکمنستان ریحا می شوند. بیستو پنج جمادی و ثانی مطابق هبده ایمه، مقامات پلیس و صحت آمدر عراق میگویند که انفجارهای بمی در بازار فروش حیوانات خانگی در بغداد حد اقل پنج نفر کشته شدند. مقامات گفتند که در این انفجارهای همزمان روز جمعه در بازار پر ازدحام شهر شیعانوشین صدر در شرق بغداد بیش از سی تری دیگر زخم برداشتند. بیستو هفته جماع دستانی 19 می، حدود 200 موتر زنبوز در مقابل قنسلگری ترکیه در شهر بسرد در جنوب عراق اعتراض کرده از حکومت ترکیه خواستند تا از مداخله در امور داخلی عراق دست بکشند. حسین جاسم یکی از اعتراض کنندگان به خبرنگاری روی گفت مردم عراق نمی توانند به احترامی ترکیه و مداخله صدر ازمی این کشور را در امور عراق تحمل کنند. اخونات به چهره های جسته و مداخله در امور داخلی و تفریق اندازه مذهبی در میان مردم عراق قابل تحمل نیست. مترزان همچنان از ترکیه خواستند تا طارق الحاشمی، معاون رئیس جمهور عراق را که به ترکیه فرار کرده بود، به عراق تسلیم بدهد. حاشمی به اتهام کشتار دست جمعی در بغداد مورد محاکمه غیابی قرار دارد. انقره گفته است که او را تسلیم نخواهد کرد. خود حاشمی این اتهامات را رد کرده میگوید که این یک انگیزه سیاسی است. ایتالیا 27 جمادیوسانی مطابقه 19 مای یک زلزله به پیمانه 6 اعشاری یک درجه رکتر نزدیک به شهر برون یادیر شمال ایتالیا را تکان داد که در نتیجه این زلزله سیتن کشته شدن به اثر گزارش ها خسارات اندکه به شماری ساختمان ها وارد شده که از جمله سقف حد اقل یک منزل فرو رفته است در اواخیر ماه جنوری سال جاری نیز زلزله به پیمانه 5 اعشاری چهار درجه را شمال ایتالیا را تکان داده بود. آمریکا 27 جمادی الثانیه مطابق 19 می دریالتی متاییده که یک زن یک پسری روسی را به فرزندگی گرفته سپس او را به مسکو فرستاده بود از سوی محاکمه دستور داده شد تا مصارف حمایت طفل همچنان مبلغ هزار دلار آمریکایی را بپردازد یک قاضی در جنوب آمریکا گفت که باید این زن ماهانه مبلغ 1000 دلار آمریکایی را به خاطر حمایت از این طفل که یک نوسور است بپردازد این زن آمریکایی پسری روسی را در ماه اپریل سال 2010 با یک نامه به مسکو فرستاد او در این نامه افتبوت که این الطفل پرخوشگر و مشکل ساز است بنابر این دیگر نمیخواهد او را به خود داشته باشد این حادثه در سطح بین المللی غوغا بپا پا کرد و سبب شد تا روسیه موقتا برنامه فرزندی گرفتن خود را با ایالات متحده آمریکا به حالت تعلیق در آورد 28 جمادی الثانی مطابق 20 یک روز قبل از کنفرانسی شیکاگو مردمی آمریکا در نزدیک محل کنفرانس دست به اعتراضات زده و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند یاکی رجب مطابق 22 می در همین روز کنفرانس شیکاگو به وقوف ای در این کنفرانس رهبرانی بیش از 60 کشور اشتراک ورزیدند موضوعی محور بحث در این کنفرانس مجاهدین بود به خصوص طالبان و مهاجرین در این کنفرانس ایشان خواهان همکاری دراز درازمدت بعد از سال 2014 به افغانستان شدند البته گفته شده است که سالانه 4.1 میلیارد دلار را به افغانستان کمک خواهند کرد سی رجب مطابق 24 می هیلری کلنتون وزیر خارجه امریکا میگوید که متخصصین اینترنتی امریکایی در صفحات اینترنتی القاعده در یمن مداخله نموده پیامهای آنها را تغییر دادند و گفته کلنتون متخصصین امریکایی معلوماتی را که القاعده در مورد قربانیان امریکایی در صفحه هایشان درج نموده بود با معلومات در مورد افراد وضح کرد که توسط القاعده در یمن کشته شدند اوکراین یاکه راجا مطابق 22 مئی رئیس جمهور اوکراین میخواهد که به خاطر گستریش روابط سیاسی و اقتصادی کشورش با افغانستان در کابل سفارت بکشاید ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در نشست سران ناتو در شیکاگو با مرتض کرزی دیدار نموده در مورد ایجاد سفارتش در کابل صحبت نموده است یمن 29 جمادی الثانی مطابق 21 مئی گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که روز دوشنبه در نتیجه یک عملیات استشهادی در یمن حداقل 96 تن کشته و 10 دیگر زخم برداشتند در این واقعه یک برادری استشهادی سربازانی را هدف قرار داد که یک رزمگوزشت نظامی را در پایتخت این کشور تمرین می‌کردند مقامات یمنی می‌گویند شخصی که لباس اساکیر را برتن داشت در میدان اسابین در نزدیک قصر ریاست جمهوری این کشور عملیاتی استشهادی نمود گفته می‌شود که هدف این حمله افراد بلندپایه حکومتی به‌شمول وزیر دفاع ولوی بود که اما جان به سلامت بردن 28 هشت جمادی سانی مطابقی بستیمه سه نفر از کونواردان هنگامی پایین شدن از اپریس بلندترین قلعه کوهای جهان کشته شدن یکی از این کشته شدگان از آلمان دومی از کوریای جنوبی و دیگری یک زنی کانادایی نیپایل اصل می باشد بستنوی جمادی سانی مطابق بستو مقاومت ها میانی مجاهدین و مرتدین داخلی در یمن افزایش یافته است در همین حال تحلیلگران میگویند که جنگ در یمن در این اواخر مساوی با جنگ های وزیرستان شده است در همین حال مراکز استخباراتی سی آی ای نیز حملات تیاره های بدون سرنشین را در آن مناطق افزایش داده است مالی 29 جمادی الثانی مطابق 21 می معترضان در این کشور با اعتراضاتشان وارد قصر ریاست جمهوری شده رئیس جمهوری آن کشور دیون کوندا تر آوری را مورد لاتکوب قرار دادند افراد حکومتی پلیس را مورد انتخاب قرار داده گفتند چرا مزایره کنندگان کن داخل قصر ریاست جمهوری شدند و گفته می شود که پلیس نیست مخالف با رئیس جمهوری آن کشور بود بیت المقدس 1 رجب مطابق 22 می یک ویدیویی که در این اواخر به نشر رسیدنشان می‌دهد که یک فرد یهودی مسلمانان فلسطینی را می می‌نماید و پلیس یهودی نو حرکتی را از خود نشان نمی‌دهد از سال 2000 میلادی تا کنون بیش از 50 در این نوع عملیات کشته شدند سوریه در مخالفت‌های شدید در شهر درای آن کشور 7 کشته شدند پنج تن افراد حکومتی و 2 تن دیگر مردمی ملکی بودند دمشق در نتیجه یک عملیات که توسط زهر صورت گرفت، جنرال نیرو و رئیس استخبارات آن کشور کشته شد. لبنان. بستانای جماع دستانی مطابق 21 مای، جنگ های مذهبی که از دیر وقت اکنون بین شیه مذهبان و اعلی سونی دوام داشت، اکنون در پایتخت آن کشور نیز بروز کرد. در این حال، در مخالفت هایی که به تاریخ 21 مای رخ داد، دو تن کشته و چار تن دیگر مجروح کردیدند. بعد از باقی این حادثه، نیروهای آن کشور با تانگ هایشان به خاطر تامین امنیت داخل پایتخت شدند. مصر سه رجب مطابقه 24 مای. مردم مصر در روز دوم انتخابات آن کشور به صندوق های رعی تا رئیس جمهوری را انتخاب نمایند که جای خسن مبارک را پر کند. حسن مبارک در نتیجه تظاهرات مردم مصر در ماهی فبروری سال گذشته بعد از سی سال حکومت قدرت را ترک نمود. در بین دوازده کاندید عمرو موسا رئیس سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه مصر در دوران مبارک و همین طور محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین دو کاندیدی پشتاز می باشند. یاکی رجب مطابق 22 می یک زلزله با شدت 5.6 در شریکتر غرب بلغاریا را بلرزه در آورد رسانه های بلغاریا گفتند مرکز این زلزله در بین سوفیا و شهر پرنیک در سی کیلومتری جنوب پایتخت بود نظر به گفته ها تکان های این زلزله در غرب و جنوب غرب بلغاریا احساس شده است آلمان برادر مجاهد ما به نام احمد صدیقی مشهور به عبد از سوی حکومت آلمان به 6 سال زندان محکوم کردید پاکستان 26 جماع دستانی مطابق 18 بی تقریبا در تمام کشورهای عربی مسلمانان ضد حکومت تاغوت قیام نمودن مگر در بلاد حرمین به این مناسبت در نواخر یک ویدیوی جدید از اداره از صحاب بنشر رسیده است در این ویدیو شیخ ایمن و مردم جزیرت العرب را به جهات علیه حکومت تاغوتی تحریز می نماید یک رجب مطابقی با استودیوی مای مقاماتی پاکستانی گفتند که افرادی مسلح ناشناس روز سه شنبه بر شرکت کنندگان یک راهپیمایی سیاسی در سیدر شهری کاروچی گلولاباری نمودا پنج تن را حلق کردند و در این رویداد چند موتر و دکان تعمی آتش شده است. دیروز در شهر میرا لی در نتیجه عملاتی تیارهای بدون استانشینی آمریکایی چهار برادر مجاهد به شهادت رسیدند. پایان اخبار. في ساح أقصان الأبي هم لني في ساح أقصان الأبي. وأطلب مسمعيز رصاص رشاش أبي زمجر. وأطلب مسمعيز رصاص رشاش أبي زمجر. وأطلب مسمعيز رصاص رشاش أبي زمجر. رثة الأما. سنا بندا گنی نهایت عزیز همین طور رسیدیم به با پایان برنامه امروزی با شنیدنی یک ترانه همه شما را به خداوند منان من می سپاریم والسلام علیکم و رحمت الله و برکات لا لا صحب محمد أنكم صحب محمد حطموا علم حطمو الليالي واسبقوا ركب المعاري حطموا علم حطمو الليالي واسبقوا ركب المعاري وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعه دينا محمد في دياجير المبادئ في آصير المساوي في دياجير المباد في آصير المساوي أفهموا كل مناو أنكم جند محمد أنكم جندوا محمد حطموا هلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا هلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد انتم نور الهدايه انتم للحق رايه انتم نور الهدايه انتم للحق رايه حطموا قيد الغوايه وانشروا نور محمد وانشروا نور واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطه ظلم Vasbikurak bel-mali, hattu muu, mel-mali, vasbikurak bel-mali, Watzulu gulalagawari, warrafahoudina muhammad, warrafahoudina muhammad. Laisa filan islamizulu, ليس في الاسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجنر انه دين محمد انه دين محمد اصبركم ركب المعالي وابذل كل القوا Warfaudina وارفع ديننا محمدا وارفع ديننا محمدا ان من اسلامكم واجب وعد وفته ان ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي O abzulu kulle alghawali, warfaudina Muhammad, warfaudina Muhammad, warfaudina Muhammad,